خب بسم الله الرحمن الرحیم در مقدمه که خودی در از هایی این مسئله خودی که گفته بود معانی حشت باب داره یک خاتمه بله باب رو کموم کردید رسیده که این خاتمه خب في اخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر خاتمه کتاب یا خاتمه قسمت معانی کتاب در رابطه با ایراد سخن بر خلاف مقتضای ظاهر ایراد سخن بر خلاف مقتضای ظاهرش ایراد الكلام على حسب ما تقدم من القواعد يسمى اخراج الكلام على مقتضى ظاهری اراعه سخن طبق قوائدی که رد شدند نامیده بشه ایراد سخن طبق مقتضى ظاهر بر اساس ظاهر قوائدی رکتا کار خود دیم. اگر سخن طبق این قواعد باشه بیش ایراد سخن بر اساس مقتضای ظاهر و قد تقتزل احوال العدول عن مقتضا ظاهری و گاهی اقتضا میکنند حالات انحراف رو عدول کردن از مقتضای ظاهر رو مطاعت شدید؟ بعضی از حالات چورین اقتضا میکنند که سخن بر اساس مقتضای ظاهر نباشد و یورد الکلام علی خلافه فی انواع مخصوصه و وارد میشد و یا ایراد بشود کلام بر خلاف مقتضای ظاهر در انواعی مخصوص در انواعی خاص و ویژه این انواع چه هستند برها تنزیل ذیل بفائده الخبر او لازمه بها منزله الجاهل بها یکی از اون جاهایی که کلام از مقتضای ظاهر خارج میشه جاییست که شخصی که آگاه است بفائده خبر یا بلازمه فائده یا آگاه است بلازمه فائده قرارش بدهند به منزله شخص جاهل شما شخص و عالم و که به فایده خبر یا به لازمه فایده خبر آگاهی داره میایید به منزله شخص, شخص جاهلش قرار میدی چطور شخص جاهل و خطاب قرار میدی این شخصو هم به همون شکل مورد خطاب قرار میدی با همون ادبیات انسان جاهل باش حرف میزنی فایده خبر چیه؟ خب مسلمه این موقعی که بیاد کتابی نیست تا به مخاطبین فایده بده اینو میگن فایده خبر مانند این که ما مثلا بیاد الفیه رو بیخونیم یا دروس البلاغه رو بیخونیم خبر یکی از هیچ موقع بیهوده انسان خبری رو ارائه نبیده تا فایده ای داشته باشه ولیگاه این موقع مثلا شما سخن و القابی کنی درش فایده وجود نداره نمیخوای که طرف فایده بدی طرف آگاهی بدی بلکه اغراض دیگه ای درش رو داره مانند دیم که مثلا شخصی به پدرش بگه پدر مرا چقدر خوب و قشنگ تربیت کردی در حال که پدر خودش آگاهی داره که پسر رو چطور چطور کرده؟ تربیت کرده بین بی میگن لازمه فایده بین بی میگن چه؟ اما اگر مخاطب خبر نداشته باشه آگاهی نداشته باشه من بیام مخاطب و آگاهی بدم به این میگم فایده خبر پس در لازمه فایده مخاطب آگاهی داره بطور بله. بریم جلوتر لعدم جریه الاموجی به علمه چرا انسان آگاه رو به منزله جاهل قرار میده؟ به خاطر این که مخاطب بر اساس آن که علمش ایجاب کرده حرکت نکرده. به این خاطر بیاد به منزله جاهلش قرار میده به منزله چهش قرار میده؟ فَيُلْقَا إِلَيْهِ الْخَبَرْ كَبَيُلْقَا إِلْجَاهِلِي پس القا بیشه برای این شخص آگاه خبر همانطور که القا بیشه برای شخص جاهل که كا قول که لیمه یعظی عباهو این جملهت برای شخصی که پدرش رو می آزارد حالا ابوک این پدرتوه خب اینجا طرف دانه پدرش رو اذیت میکنه بر اساس آن چه که دانشش اقتضا میکنه حرکت نمیکنه لذا شما بیایی اینو به منظر جاهل قرار میدی و بگی این پدرته اچتاه؟ با توجه شدیم ام پس یکی از اون جاهایی که سخن خارج میشه از مقتضای ظاهره یا و با مقتضای زمانی که شما انسان آگاه رو به منزله شخص جاهل قرار میدهید، بخاطر این که کار جاهلانه انجام داده. یا طبق انسان آگاه حرکت نکرده و دین ها تنزیل و غیر البنکری منزلت البنکری اذا منزلت البلکیری ادالا من علامات الانکاری و ایکی از اون جاهایی که سخن برخلاف مقتضای ظاهر کار برداره بکار بیره قرار داده شخص غیر بلکر به منزمه شخص منکر زبانی که ظاهر بشود بر او چیزی از علامت های چیزی از علاوتهای له پس تأکید کرده میشه برایش سخن سخن به شکل تأکید برایش آورده میشه نبید همانطور که سخن برای شخص ملکر با تأکید آورده میشه که قبلا فونده برای این شخص که بورکر نیست ولی علامات بورکر درش ظاهره مثل شخص بورکر سخن برایش بکار برده میشه یعنی با تأکید بکار برده میشه وارد جمله جا فيه <تصفيق> شقیق که اسم شخصیه میگه آمد در حالی که لزش به صحدان بود یعنی سواره بود آماده نبود لزش آواده رو به پهنان هادی بود خب در جنج انسان با این کار بره یعنی گویا که برشیره گویا که حریف رو حساب بعدا در بیت دو مصره دوم بیاد این نبری ام بکفیه برماخ بیاد میگه در فرزندان عمول سر رماخ وجود داره اونا هم روم سبراه شد خاص. است؟ با تحکید شاورد با چه با تحکید چون برخورد آقای شقیق به بگونه است که گویا منکر اصلحه ترخه مقابله منکر سلاح ترخه چیه؟ مقابله و تنزیل البنکری او شاکی منزلت خالی اذا کارد باقه به شواهی با اذا تعمله زال انکار کارو او شکه وك قولك للسائل المستبعدي حصول الفرج و بعد ذي سخالته بشخص پرصده‌ای که حاصل شدن فرج و خوشایش رو دور می‌پزدارت بعید می‌پزدارت بش بگید ادل فرج لقرینوت با تاکید از اضافات تاکید لام نگذدا ته تاکید دو تا برای جزییه بول جزییه بوده اما و او اذا كان ما، اذا او و یکی است که قرار داده شود بولکر یا کسی که متردد هست، به شخصی که خالی و زهر است، شخصی که بولکر نیست یا متردد نیست. چه زمان؟ زمانی که همراه با این شخص شواهدی وجود داشته باشد که اگر در شواهد تعمل بکند انکارش یا شکش از بین می که قول کلیبانیون که رو منفع او یشوک فیها ها این سخن و کلام تو به شخصی که دفع پزشکی رو رد می کند یا در شک دارد تو میشه بگید اطقب و ناتون جوری باش سخن گفتی که خای و ذهن هست یعنی براش تأکید نکن در حالی که اگر طرف متردد باشه یا ملکر باشه ما قبل از ها خود دیم که باری و من ها ومع الماضی بود المباری لغرب و یکی از اونجاها که سخن برخلاف مقتضای ظاهر هست آوردن فعل ماضی یا قراردادن فعل ماضی سر جای بزاره بخاطر حدش که تنمیه علا تحقق الحصول باننده حشداردادن به حتمی بودن حاصل شدن اولکا بطرد چرا سر جای فعل بزاره ماضی رو بیارند تا حشدار بدهند که طور که ماضی قاتع الهقوع هست اینجا هم این کار قطعیت داره وقوعش اتا امر الله فلا تستعجلوه اتا امر الله عمر خدا دی آیت اجال نکنید ولی با چش سیغه اومده اتا با ماضی او التفاعلی یا خوشفالی کردن دهو ال... شفاک الله اليوم تذهب با غدا شفاک یا شفاک فعل بازیه شفا یشفی شفا یشفی پس شفا به شکل بازی و غدا ببینید ببینید فعل مزاره چرا مخاطر نبید فحق قول تطول بودند. واقع بودند. و اکثر هيكل زائد دیگر خلاف مقتضای ظاهر میاد. برعکس این گزینه قبلی. یعنی آوردن فعل مضارع سر جای فعل ماضی با خاطر اغراض. وضع مباری بوضع الماضي بغرض قرار دادر سر جای فعل ماضی به خاطر غرضی که استحزاری صورت الغریبه في خیال مانند حاضرکرده تصویر غریب و شگفت انگیز در خیال انسان تعالی والله الذي ارسل الرياح فتثير صحابه الله الذات القد باظهار و ترساد و و فر که حالتی تصویری شگفتنگیزو از عبرها و بارانو در خیالتی بیاره مخاطب متك... ای فا اثارت فا تو ای فا اثارت بازی و افاده الاستبرار فی الاوقات الماضیه. و همچوری افاده استبرار در زبان بودش یکی دیگر از اغراضی که مزارس رجاء الماضيديات إفادة استمرار در اوقات مزشحة واعلموا أن نفيفون رسول الله بدان استدارهان رسول الله حص. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعرفكم اگر سوارا إفاعت مزارد اگر سوارا إفاعت مزارد ايه لو استمر على إفاعتكم اگر استمرار میداشت در چیه شو و منها دیگر از اغراض یکی دیگر از جاهایی که یا مواردی که سخن برخلاف مقتضای ظاهر بیاد و او الخبری باو به با قراردادن جبله خبری سر جای انشاییه بخاطر غرضی که تفاولی بارد خوشفای و تفاول نخوانید عبارت زلالان ذهو هداک الله لصالح الاعمال اذا هداك هدا يهدى فعل بازیه ولی جمله خبریه اما سر ججع بده يرشوم بده این دعایی هست این جمله چی دعا هست ولی خودش جمله خبریه خود جمله چی هست هدایت کند الله تعالی <تصفيق> برای احوال صالح اما بار خبر موجود بار تومد خدافت في نمازيه وإظهار الرغبة فس براية تفاول وهم جلد إظهار رغبة ده هو رزق لي الله لقاءك فس إظهار علاقه كردان رزق لي الله لقاءك خداون بيدارك روح دسیب عنایت می‌برید که رزاقه فله بادیه خبری است اما اصل جای ابشای امید است و الاحتراز و دیگر که احتراز کردن ان صورت الامر تعذل پرهیز کردن از شکل امر به خاطر ادب به خاطر چی؟ رعایت ادب که قولک یظهر بولایتی ادب مشایی که ذو قام بولای من به من بخاطر ادب دیگه یانو دورو بولایا ای الامر بصوا عشان نشوف هو بنستمر پس از جاهایی که سخن بر خلاف مقتضای ظاهر میاد قرار دادن خبر سر جای انشاء بخاطر اغراض یکی از اغراض تفاوله، یکی از اغراض اظهار رغبت و یکی از اغراض غرضها ها چی احتراز على صورة الأمر وعلى أكس جزيني قلبي مورد قلبي يعني ومو الإنشاة موضو عن خبر و غرم قرار داد دا الإنشاة سنجاية خبر بخاطر أغراضي باسا فإنهار الإنايط بشي ما رمي إصهار کرد الإنايط بشي نحو ماند فل أبر ربي بالقسط وأطيبوا وجودكم عند كل مسجد ودعووه بخلصيل لهذين ثم بدأكم تعودون. فاس دشان دادر توجه بچيزه. أصل شو ليه قول ربي بالقسمة وإقارة وجوهكم عند كل مسجد ابا وأطيبوا بده بجاي خبر شيء وبدت إيش شو بدك أطيبوا في الأمر. لم يقل وإقامة وجوهكم لا قفتت إقامة وجوهكم إذ جاك وعقيموا وجوهكم كن أمر ربي بالقسط وإقامة وجوهكم إذ يريعا عما ورده وعقيموا باره إن آية بعمر الصلاة تتوجه بدهت بعمر شئ بمسأله نبات والتحاشي عن مواضات لاحقی به و یکی دیگر از غرض در این که ارشار و سر جای خبر میارند یکی دیگر از غرض ها چه هست دوری کردن از برابر کردن دو چیز دوری کردن از مساوی کردن برابر کردن دو چیز که یکی قبلان اومده و دیگری بعدش بیاد باننده قال امی اشهدالله و اشهدو انی بلی امی با کشرکون بطران شد بگو شما را گواه بگیرم و شاهد باشید که من بیزار هستم به اما از شرکول ازام چه کشمات چه هستید؟ شرک شرک و ولی اگر اینجا دقت کنید بجاید قال اینی اشهدالله و اشهدو کم اون نوعه چی بیشد معنی؟ یعنی خدا و شما را گواه بگران اون نوعه همسانی کرده بود گواهی خدا را با گواهی که مشرکان شد مطمئن شدید؟ فست و تحاشی از موازات لاحقی همین هست دوری کردن پرهید کردن از مصابی کردن لاحق با سابق اولی که قبل بیاد با که بعد بیاد. و لا بیا قل کن به جای نگفت اشهدو کن چرا تا پرهیز کرده باشه از دوری کرده باشه از مواضات کردن برابری کردن شهادت شکیل با شهادت الله والتسوی کی دیگر از غرضها تسوی هست همسان کردن بالد قل انفقو طوعا او کرها لن یتقبل منکم بگو انفاق دهید از روی اطاعت یا از روی اجبار از شما از روی کراهت مال شما هرگز نزی رفته نمی شود خب قل انفقو تواند او کرها اینجا انفقو فله چه طلبه به جای انفق تو بوده قول انفاق تطوع او کرح لن يتقبل منكم اما با امر شاورده بگو اتمام کنید از روی رضایت یا غیر رضایت از شبهه نمیشه. نشه طب موقعی که شبهه زیرفته نشه اصل بر که با چه فعلی امکان برده بشه بله اما به خاطر غرض تسویه امر رو علارده است تصبیر کردن بر اتفاق دلخواهی و فاق اجوای. و بین ها و یکی دیگر از جاهایی که برخلاف خلاف مکت ظاهرهلی ظار رو که مقابل اظهاری آوردن زنلی در جای اظهار به جای او که اسم ظاهر رو بیاری بهجای بیارن زنلی رو. تندعائی ان مردی عظمینی دائم خبولی فی ذهن فس یکی از جاهایی که کلام برخلاف مقتضای ظاهره ازمار کردن در مقام اظهار بخاطر غرض زمیر آوردن بجای اسم ظاهر بخاطر غرص یکی دور غرص هاچی هست یکی از غرازها این است که ادعا کرده میشه انتی که زمیر به عنبر میگرده همیشه در ذهن وجود داره همیشه در ذهن که قول شاعری ابط الوصال مخافت الرقباء و تحت مدار عمض الماء وصال رو نتجور بخاطر ترس از رقباء و زیر پوشش تاریخ شب پیش تو آبد اینجا عبد فائلش چیه؟ فائلش یه هست که به معشوقه برمیگرد هیه هست که به چی مرگی کرده؟ معشوقه اما ذکر نشده مرگیش قبل. قبلا مرگیش ذکر اینجا بجای این که اسم ظاهر و بیاره بجای اشتی آورده؟ ما موسا؟ اصل بلیل موقعی که مردین زمیر نواشه که بجای زمیر اسم ظاهر یا امیر؟ اما میبینیم که در عبت الوصاله ما بجای این که بیادو اسم شو ذیکر بکنه اسم ظاهر و ذیکر بکنه؟ زمیر, زمیر آورده متعجنی ما موسا؟ الفائل وزیر لبی تقدم له برده تيجي فائل زميري اسكي مارجيش قبله زيكر نشو فمقتضى الظاهري الامحار مقتضايا الظاهر مقتضايا تبقي قوائدكي خود دي إلسكي فائل ظاهر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مصر ما بعد الزمير في نفس السابعي هيكي ديجارة دون که ازمار در مقابل اظهار هست یکی دیگر از اون هدف که گفتی بود با به هدف های این کار بشه چه هست؟ جاداده نیست آنچه که بعد زمیر بیاد در ذهن شرواز چون اگر در ابتدا زمیر بیاد شنوانده بیاد که بعد زمیر بیاد مشتاق بشه و تمکین و بعد زمیری فی نفس سامعی جا دادن که بعد زمیر بیاد در دل و جال شنوانده لتشوقهی الهی اول است بخاطر مشتاق کردنش تشویق کردنش ابتدا، نهو ماننده، هی النفس ما حملتها تتحملو اینجا، هی النفس ابتدا چی اومده از؟ زغیر اومده شروع اصل است که اینجا، شروع کرد چون زغیر اما میگه به خاطر این که ما بعد زمین رو در ذهن شنونده در جان و دل شنونده بهتر سمکین بده بهتر جا بده بیاد با زمین شروع می کنه آن نفس هست هرچی حملش کنی بارش کنی حمل می کنن این عزیز. یا قل هو الله احد بهو او الله احال هو افتداو به زمین ومثال دیگه که آورده است نعم تلویدن المؤدده در نعمه که بعد از این فائل شنو آورده است خب هوی که در نعمه هست زمین هست که مرزه باقر نداره البته در کتب نحوی این مسئله اونجا بیشتر توضیح داده میشه چی جاهای این زمیر بیا شبون زمیر بحث زمیر قصه و شعن که شما اونو در کتاب حتما بیخودید و در اگر هدای رو قدرین هم اونجا داده است در چی هست بیخود پس موارد کلام برخلاف مقتضای ظاهر ازمار هست در مقال چی؟ اظهار که اینا آورد و اکسو و برعکسش یعنی یکی دیگر از موارد آوردن کرام برخلاف مقتضای ظاهر چه هست برعکس مورد قبلی یعنی الالهار فی مقام الاظمار اظهار کردن در جای کسی بشه زمین بشه لغا رزن بازن بخاطر اغراس بازن بخاطر حدام تقریف داع دا الانفصاد یکی از اون غرض ها چه هست؟ تقویت کردن و جاگیر کردن انمیزه اطاعت و فرمان برداری سید مانند این که قول کلی عبدی که مانند این که به بردهت بگویی سیدوکا یعمروکا میکلا سیدوکا یعمروکا به جایی که بگه انا آمروکا میکلا به جای سیدک سیدوکا اسم ظاهر و آورده است به چه انگیزه ای؟ به خاطر تقویت، به خاطر تقوییت انگیزه اطاعت، تقوییت کردن انگیزه فرمان موردی پروردگارت به تو این رو میده بیخواد که اون انگیزه اطاعت و امتصال رو در تو چیکار بکنه؟ تقوییت میده بیگه پروردگار تو رو این دستور رو میده إن الله يعمرك ومنها واز موارد دیگه ای سخن در خلاف مقتضای ظاهر آورده میشه الالتفات الالتفات التفارجيجاس كلستولد به، وهو نقل الكلام من حالة التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى حالة أخرى من ذلك. نقل كرده سخان، سخانه، أز حالته تكلم يا خطاب يا غيبة بحالة جيجات. مثلاً دار ابتدى سخانه باغيبت حرف مزلاه، باشخص غائب حرف مزلي. وثب حالاتو تغییر بده و به خطابش بیاره. به چی بیاره؟ یا به تكلبش بیاره. یا تكلب رو به خطاب میبره. حالا خودش داره توجیه میشه. فن نقل از تكلل به خطاب نقل کردن از تكلب به خطاب. نحوما ندید و ما نیا لا اعبود اللذي و وإلهي ترجعون. دقت داشته باشی. توی مثال شنیدی میشه. چی اسپرا؟ عبادت نمی کنم کسی که برای خلق کرده و به سمت اون طاس نمی ببینید اینجا تکلب اطلاق و ما لا الذي فطرني ها؟ اینجا دیگه تکلب است اعبود یا یاء خطا است تکلب گیرم یاء بود اما ادامه اومد تغییرش داد بردش دا به دا حاضر و ایلیه ترجعون ترجعود ترجعو. سیغه چیه؟ مخاطبه چیست مرا که من عبادت نمی کنم ذاتی که مرا خلق کرده است و به سمت او بر باز می و به سمت او چکار میکنم، باز میگردم. ولی به شکل مخاطب شاورده، شکل چه شاورده؟ خاطب و ایله تور جامون و بیشتر بسات تو او باز میگردم. یعنی هم من باز میگردم و هم شما من و شما بسات تو او باز میگردم. پس یعنی میگم انتفاع. ای آرژیو و برای تكلم الى الغیبه و ناقل کردن سخن از تكلم بهش به غایبه به غیب. دحه اینا عقیده کل ما ترا کوتر دادی. دا همانا ما تو را چه داری؟ فصلی لربک و انحرم اینجا التکلم به چی بود؟ باری ما تو را داری؟ اعطیده، ارنا این ها چه هستن؟ تکلمن؟ متکلمن؟ اما فصلی لربک و انحرم، چه شد؟ ده دیگه حاضر شد داده کالویی نه درست نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه باید یه باب بیفتنه دو تا بیشتره بعد درسته اینا عطای ناکال کوسار اینجا خود متكلم الله متاله دو که کی؟ که ما بخشیدیم چیزی بعد از این چی گفت؟ به پروردگار پروردگاره. دیگه نگفت برای من فصلی لي واحد، لكن قلت تصلي لرب، فسيجاه متكل ااا أز متكلب ما إبره، وبين الخطاب إلى التكلم، أما بصالع الخطاب كده بيتكلم كقول الشاعري أفصله وصل ربات الجمال وقد سقط المشيب على قذالي. آیا بیخاهی با دختران زیبارو رابطه بگیری حال آنکه که پیری بر سر بر پشت سر اختاره خب اینجا از خطاب رفته به چه؟ به جای گفته قرنالکه به تکلم رفته به چی رفته؟ باید پس اطاعتنون بو ربات الجبال آید این که بودنه زیبارونان را و قد سقط البشیبو علا قذن و پی کهیلی بسرم اومده است متوجه شدید بجای قذالکه لکا... چی گفته هست؟ چون تطلبو دیگه مخاطره از تطلبو آیتومی تلبی وصل شدنه زیبارویان را وقت ساقه طال المشیب و علا قذالکه باید چون افتدا چیه؟ خطابه دیگه آیتومی تلبی آیه آی بخواهی که با زیبارویان واس شوید در حالی که پیری بر پشت سرک رسيزه أسر. أما اما بالجاية قذالي كتبوه؟ قذالي يعني از خطابه بدنكه جاه بكثلوه ومنها تجاهل العارفه ويبكين ديگر ازوم جاهل كبار خلاف الظاهر ميات تجاهل عارفه هست وهو سوق المعلومي مساقة هيريه تجاهل العارف هست سوق دادن چیز معلوم در روان چیز نچوله اینو بگن تجاهلالعارف یعنی شخصی که به چیزی آگاهی داره خودشو به جهالت بیزنه خودشو به چی بیزنه؟ به ناآگاهی بیزنه اینو بگن تجاهلالعارف نقرازه به خاطر ازداد که توبیتی مانند توبیتی داره. مالک شکی نحب فشکی از اسباب تجاهل العارف چی است که شخص بیاد تجاهل العارف میکنه بی تو بیخ آیا شجر خابوری مالک بوری قلب کانک لم تجزع علی ابن طریفی ای درخت سرزوید خابور مالک بوری قلب چرا شده دید چرا خیلی پربرگی که اندکه لم تجزه علی ابن تریف گویا تو بر پسر تریف جزا و پزه گویا که تو بر پسر تریف جزا و پزه نکرده تو بله لیلا دختر طریف این شع رو در سوگواری برادرش پس اینجا جهت توبیخ عومده است تجاهل العارف میکنه ب و منها پس یکی از اسباب تجاهل العارف هست ومنها أسلوب الحكيم يكي أذنبه موارد أسلوب الحكيم وهو الطلب المخاطم بغير ما يترقبه أو الصائل بغير ما يطلبه تنبيها على أنه أولى بالقصد هوا يكي ديجان عن موارد أسلوب الحكيم وأجهة برخورد کردن متکلم با به گونه ای که مورد انتظار دلیم دلیم دلیم. مخاطر مخاطر نیاد یه سوالی رو از تو یک کاری رو میکنه تو برخوردی باش می کنی که اون انتظار رو ده داره این برخلاف مطلق المخاطر بغیر ما یا ترققم برخورد کردن با بخاطر به غیر از آن که در انتظارش هست او سائلی یا برخورد کردن با سائل با پرسنده به غیر مطلوب، बगैर واقعی که طلب کرده است. سوالش چیز دیگه، تو بگویید چه چیز کاری، چی بگویید؟ جوابش می‌شه. تو به اصل و حکیم. تدبیها على تا آگاه بشه، هوشیاری بشه که این جواب تو و این برخورد تو اولاتر بوده است به قصد فالاولو اولی یعنی تلقی المخاتب بغیر ما یترقبه، ترقبو یکولو به حمل الکلام على خلاف مراد قائله اولی حمل کردن سخن بر خلاف مراد گوینده یکولو بحمل الكلام على خلاف مراد قائله مي حمل سخن برخلاف مراد قويا داش تقول القبع ثراب للحجاج مانند سخن قبع بك بيوسف حجاج وقد توعده بقوله که قبع سرا رو با این سوخرش تهدید کرد حجاج مشتی گفت: لا احملنک علی الادهمی. تو بر ادهم حمل میکنم ادهم دو معنی داره. هم به معنی اسب میشه و هم به معنی به زنجیر میشه. هدف این بود که تو را به زنجیر میکشم اما قبعسرا او چه چی برداشتی کرد کلامش رو بر چه چی چیزی حمل کرد بر خلاف مراد حجاج سخنه یوسف حجاج سخن رو سخن حجاج رو حمل کرد بهش چی گفت در جواب قبعسرا چی گفت در جواب گفت مثل الامیری يحمل على الادهم والاشهر شخصی به امیر سوار کند. هم بر اسب سیاه و هم بر اصب سفید ببینید ادهم اسب سیاه و بیگن اشحب اصب سیاه و بیگن سفید و بیگن موقعی که حجاد گفت لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِي ترابزن جیر میکشم قرع سراب سخنش رو بر خلاف گوینده حمل کرد گفت مثل الامیری احملو علی الادهمی و الاشحب گفت شخص مانند امیر هم بر اس سیاه سوار میکند هم بر اسه سفید. دو تا با اونسا داری جلوت. فقال له الحجاج حجاج در جوابش گفت اردت الحدید منظور من از ادهم آهن بود، زنجیر بود. فقال القبعثره بوقت حجاج گفت: حدید باز هم حدید رو بر خلاف مراد گوینده حمل کرد." فقال القبع ثرا قبع ثرا قلت لان يكون حديدا خير من ان يكون بليدا ها اگر تودرو باشد بهتر از اید است که کودرو باشد حدید یعنی تود هم به معنی آهن حدید هم به معنی تیزه گفت اگر تیز باشه بهتر از این که کود باشه و متوجه شدید یا مثال قشنگی افتاد افتاد اراد الحجاج بالاذهب القيد منظور حجاج از ادهم قید بود و بالحديد المعدن المخصوص و منظور از حديد همون معدن خاص آهن بود و حمله لقبعثرا على الفرس الادهم الذي ليس بلیدن اما قبعثرا سخنه حجاج رو به چی چیزی حمل کرد؟ بر اسم سیاهی که کرد نباشد. بر اسم سیاهی که کرد نا باشد جا؟ بس اینو بیدن اصلوب حسن اینو بیش بیدن چی؟ برخورد کردن با بخاطر به غیر رضاتکی که در استیزار به غیر واقعی که در تیکر یک مثال برای اه اه اولی بود یعنی برخورد با بخاطر به غیر رضاتکی که در تزار شد، او صائلی بغیر ما یتلوب یا برخورد کردن با سائل به غیر رضاتکی که طلبش کرده حالا مثال اینو برمی‌آری و ثانی یقول به بتنزیل سوالی منزله سوال اخر مناسب به محال سؤال سوال را به منزله سوالی دیگر گرفتن. تا به او هستار بده که طوری که پاسخ داده شده است بهتر بود، مناسبتر برای سوال کردن طبق جواب سوالو مطرحی کردی چی؟ مناقش کردی. پس بردنش سوال به منزله سوالی دیگر که به حالت فاعل مناقشتره. یعنی دور جوابش بیدی که اسائل اگر تو سوال تو اینجوری می‌پرسیدین بهتره. ها؟ کما فی قولی تعالی مانند این قول الله تعالی یسئلوا لتعلم اهلہ از احیله میپرسند از حلال میپرسند قل هیه بواقیتو للناس والحج دوگو وقتهایی برای مردم و برای حج کنند خب اینجا سوال چیزی دیگه ولی جواب چی؟ چه علاقه اشتوزیش بیده بچه تعالى بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذا صار سيامبر صلى الله عليه وسلم رأي فرصيداً ما بالهلال لبن دقيقاً صبه يتزايد حتى يصير بدرا. فهلال رسكي دعسكي باريك شروع بيشه سفس كنفتر بيشه كنفتر بيشه تا كان بيشه بادر بيشه يتناقص حتى يعود كما بده سفس كنفتر دوخصان تدا بيشه صحبان شدید که ابتداسی بود شمه یک شمه که بودتانی دوباره برمی گرده آس از یک شبی بیشه تا بیشه چارده دوباره باریک شوار بیشه تا بیاد بیسش بسنو میکن چرای بیشه؟ پغمبر آید همین سوال جواب دار فجاء جواب علیلتی که مترکبت اما جواب از خلسفه از جواب از فلسفی که به که برانه اومد چون برای سائل مهمتره. تره لأنها احب لیسائل برای سائل چه؟ فنزل سؤالهم على سبب اختلافی منزله سؤال عن حكمته اومد چی کار کن؟ اومد فلسفه فلسفهی رو که مترتب بر حالتهای ماهه مترتب بر دگرگونی در شکل و حالت ماهه پاسخ خدا داد زیرا بیان کردن فلسفه این ای ای ای که ماه چرا این میشه برای سائل بود وهمتر به این جهت سوالشون از اسباب دگرگونی در حالت ماه به منزله سوالشون از فلسفه اختلاف در شکل شد ماه یعنی در واقع اونا اومدن از پدیده تکویری ماه پرسیدن که چرا این ماه باریک میشه بعدش کلوفت میشه شدید اما با تو به فلسفه علمی و غیر علمی جواب این سؤال سو مهم نه بود هر چیزی که مهم بود چی وظیفه مهم که این ما حسین داره که همون بعضی از این وظیفه ها مرتبط به مسائل دینی هستند. مثل تاریخ ها. وبدن رمضان مسائل ذکات با پس آخرین هنوز وجود داره یکی از جاهایی که سخن بر خلاف مقتضای ظاهر میره اسلوب حکیمه و این به دو بر هست با مخاطب به غیر از آن که در اقتضارش بود یا سائل به غیر از آن که طلبش کرده بود که برای هم دوتای اینا سوزیهاتی رو ذکر کرده بود لعنها احمل سائل دیگه بجاییم که سوالش رو جواب بده جواب در رابطه با حکمت و فلسفهی که مترکتبه بر اونه داد لأنها احمل سائل برای این که برای سائل بودم بود و نزلت سواله از سبب اختلاف منزلت سوالی از حکمت پس جایگوزید کرد منزلت داد سوالشون رو از سبب اختلاف منزله به منزله سوال از حکمتش به منزله سوال از حکمتش از حکمتی که چرا ما حسن و به ما از تقلیب و یکی دیگر از جاهایی که سخن برخلاف مقتضای ظاهره مواردش تقلیب هست تقلیب هو هست؟ وهو ترجیح احد, احد شعیری الان آخر پی اطلاق نفویلی علیه تقلیب ترجیح دادن یکی از دو چیز برتری دادن یکی از دو چیز بر چیز دیگر در به کار بردن لفظ آن برای دیگری مثلا به جای ماهو پرشین بگد قمره ایجا. اینجا بیان باله. در اطلاق استفاده لفظ قمر بر شمس لفظ چی رو ترجیح پس ترجیح دادن یکی از دو چیز بر دیگری در اطلاق کردن لفظش بر دیگری در اطلاق کردن لفظش؟ تغلیب المذکری علی المعنس فی قولی تعالی ماننده تغلیب کردن بر برمعنس دلیل قول الله بتاال وکانت من قانتین و از قانتین بود و از چه بود؟ نه گفته بود قانتات بلکه بود وکانت بلن چون قانت هم برا برای مذکر بکار بیره برای برمعنس ولی لفظا برای چه مذکر باره از جهت ماده هم برای مذکر هم برای هم اما لفظش برای مذکر است. بیا به مذکر و همچنین و به ان ابوان للاب و ابوان هم به پدر گفته میشه برای میگه احترم ابوایت پدر و مادرت رو تشکر کن در حالی که اب برای مذکر است برای, مذکره. اب برای پس از جهت قاعده تقلیب بشه میگن یا در حدیث اومده در خانهی که در خانه در خانه در اسودان وجود داشته باشند شخص اونجا گشنه نمیشه آب و قرما در خانهی که خانه آب اسود نیست به خاطر قائده چیمش گفتند اسودان؟ تغلیب. و که تقلیب المذکری و الاخفی علا غیره معقوماننده غلب دادن مذکر و اولي كي خفيفتر هست بر غيرشان معنى ده قمره الشمس والقمر القمر يعني ابو بكر و عمر بس إله همشو قائده چهستن؟ و على غيره و معنى غلب دادر مخاطب بر غيرش غلب دادر مخاطب بر و همکنیت هالی بداند اکثر بر قال استكبروا ملقومیه. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَابُ وَالَّذِينَ آمَرُوا مَعَكَ مِنْ قَرِيَتِنَا. اول تاودونه در حالی که بشکفت یا مر به ملت ما. به شویب او دخیل شعیبون به حکم تغلیمی فی لتا اودو فی ملتینا شعیب به حکم تغلیم وارد شد در ملتینا ملت ما بگر شعیب از اونا بود که گفتن ملت ما دین ما آین ما از اونا که نبود قطر ولی بخاطر قائده تغلیم بشتی گفتن جا برمی گردی در دین ما در دینه در حالی که شعیب از اونا نبود را عنه لبی اپلتی ها قط حتی یعود ها میگه با این حال که شعب اصلا از اون ملت و آین نبود تا این که دوباره به اون بر بگرده اولت و نفی ملت ایران متعدیس با بودتا پس اینجا به حکم تقلیب اومدان شعب جز خود قرار دارن جز چیز قرار دارن؟ بله چون شعب اقل و اونا اکثر یا چون شعب غایب است و مخاطب رو بر دیگران چکار کار کردن؟ تقریب دادن بعد پس اینجا از اکثر رو تقریب دادن بر باره مثال براية بود والمخاطب على غيره والأكثر على الأقل أبا وكتغليب الآقل على غيره ما ندف غلب دادان عاصل بر غير آقل كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين العالمين هم شاملة تمام مخلوقات مجي عالمين شاملة بارد كي خرد مال غير خرد مال كي آقل كي غيره اما به حکم تغلیب اومده گفته تروردگاره آلمین آلمین مگه؟ جمب و ذکر دیش، برای آقله دیگه اما غیر آقله رو هم به قائده تغلیب جز آلمین قرار داده پس تا اینجای کار بحث سمون بشه الحمدلله فضل و کرم الله متعال و توفیقش خاتمه رو الحمدلله به روش پایان دادیم تا اینجا کار کافی است گرچه خیلی مختصر پیش رفتیم به خاطر کتاب در این سکت بود اکتفا میکنیم موفق و پیروز باشید